مصاحبه اختصاصی با محترم قاری دین محمد حنیف عضو دفتر سیاسی و تیم مذاکراتی امارت اسلامی در مورید سفری هیئت سیاسی به کشور ازبکستان محترم قاری صاحب در این اواخر یک هیئتی امارت اسلامی با سرکردگی معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی محترم ملا برادر اخون به کشور ازبکستان سفر داشت تون شما هم عضو این هیئت بودید اگر در مورد این سفر معلومات بدهید و بگویید که شما در آنجا چه دستاوردهایی داشتید بسم الله الرحمن الرحیم بله بنا بر دعوت حکومتی ازبکستان هیئتی 12 نفری تحت سرپرستی معاون سیاسی مقام رهبری و رئیس دفتر سیاسی جناب محترم ملا برادر اخوند به کشور ازبکستان سفری داشتیم درانجا ملاقات های داشتیم با وزیر خارجه آقای عبدالعزیز کامیلوف و نموینده خاص رئیس جمهور در امور افغانستان آقای عصبت آکه و دیگر کارمندانی بلنطبه وزارت خارجه. ملاقات در مقر وزارت خارجه بود که روی موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، تعلیمی و دیگر موضوعات مورد علاقه بحث و تبادلی نظر صورت گرفت. مجلس در فضای دوستانه بود و هر در جانب خواهان روابط حسنه و همکاری در موضوعات یاد شده گردیدن که یک دستاورد خوبی بود و همچنین سفری داشتیم به سمرقان و بخاراکی از قبل توسط یشان ترتیب و تنظیم شده بود در این دو ولایتی بزرگ و تاریخی در زمنی دیدن از مزارات و عابدات تاریخی با والیان این ولایت نیز ملاقاتی داشتیم که خیلی ها مفید و معصیل بود محترم حنیف صاحب، در مورد این سفر بگونه مشخص اگر بگوید چنان که کشور ازباکستان با افغانستان مرز رسمی و روابط تجارتی دارد همچنان اگر در مورد پوریجه های زیر بینائی و پیلانه های اقتصادی در آنجا با مقامات ازباکستانی کدام تفاهم صورت گرفته باشد در این مورد اگر معرومات تان را با ما شریک بسازید بله کشور ازباکستان تقریبا بیشتر از 160 کل با افغانستان سرحد وه یک پولی به استحکام بالای دریای ابو بنا شده که شهرکی بندر حیرتان را یعنی با ولایت تربیز وصل ساختا ازبکستان علاوه از داد و ستد های تجارتی که با افغانستان دارد دو پروژه بهیم وزیر نیرو دارد که یک صدور برق و یک صدور برق با افغانستان با ظرفیت 500 مگاوات و دوم یعنی احداث وتبدید خط ياهد کي هڪ سفر کان په ان راه به شهر مزار شريف رسندند ۽ فعلن قارئان معطرص کي هوت يوزبڪستان مخاهت ويزديادتي ظرفيت برق هر دو پروجه راه يعني ليني برق وقت ياهد رو از طريق افغانستان به پاڪستان وسل کلام کي بو تپبيق ان دو پروجه علاوه حق تر وزيد سالانه ملونها ڈالر بشواد तक़रीब तक़रीबी हज़ार बख़ौर मशहूरु बेगर हयाती दफ़्तर सियासी यानी ठिपकी पॉलिसी मार्लामी की हबेशात वबल याने हफ़ाज़त वमायत करदा बिनोम हयाती मोरात असीजमाया و با وابایشان وعده همکاری دادند قاریص محترم هیاتهای امارت اسلامی به کشورهای مختلف سفر نمودند و سفر به کشورهای دیگر را در پلان دارند شما به حیثیت تیم مذاکراتی و دفتر سیاسی اگر بگویید اهداف شما از این سفرها و ملاقات ها چیست مشخصا روی کدام موضوعات گفتگو میکنید از این سفرها چه دستاوردهایی دارید اگر دیدگاهتان را در این مورد با ما شریک بسازید بله هدف از این سفرها یعنی رساندن پیام عبارت اسلامی است با کشورهای همسایه که با الحسن همجوری داشته باشد با کشورهای دیگر نیز میخواهد روابط حسنه و احترام به تقابل داشته باشد امارت اسلامی هیچ برنامه جنگی خارج از افغانستان ندارد افغانها به جنگ هیچ کشوری نرفته یعنی بل امریکا و متحدین آنها به بحانه, بحانه و دلائل غیر موجه به جنگ ما آمده افغانستان را اشغال کردم و جنگ را بالا افغانه ها تحمل کردم و ما حق داریم از مقدسات و از سرزمین خود دفاع کردیم و کشورهای صفح طلب باید از حق مشروع افغانه ها دفاع نباید